بسم الله الرحمن على لله رب العالمین الله علیه سیدنا رسول الله وآله طیبین الباهرین الماسون ازنان آتو دائم مالا دائم وفیرین اللهم افید آفیم مجموعه یه روایاتی بود که در مقام حدیت خبر یا اجمالاً یا تفصیلن به اینها تمسک میشه از جمله یه روایاتی که در این مقام وارد شده در کتاب کافی شماره نمد هشت همین جلد یک و حصول کافی اینجا ملحادید اگه این چاپ بریم شماره هاش مثل این باشه حدت و به اصحاب را مشایخ مرخوم کلینی ان محمد احمد ابن محمد که عرض کردن که دارن اشعری مراده عمل حسن ابن محلی عادتا مرخوم کلینی اینجا میزن ابن فضال این حسن ابن, ابن فضالی سن از معتبره بسید اصطلاح ما ابن فضال علی حسن ابن فضال شده اما و غیر نهحس خوبه و این از شخصیت اجتماعی هم بوده فقال لهو يا محمد ان لحل بمال من و حال یا محمد نهاخ وحل بحث عله به مال مندکار ووقسه مح به کوفه علیه خ تو را ازش ددیدن و تعلتر تو ازجزه خ تاتر بیا به حال ع که قال از واجعه است. میگه که اصحاب در مسائلی که پیش می اومده، مراجعه به روایات می‌کردن. یک این چند تا حدیثی که مضمونش اینه که اصحاب خودشون مراجعه به حدیث می‌کردن. این سندش قوی به اعتبار. حدیث شماره 99 ادله من اصحاب مسائل زیاد خب این به لحاظ مستر اصلش حسن و محبوب خوبه اما خود سختیه کنامه هم صالح ابن رایزیم قال دفعه شهابون نهد رفته ایشون هم بزرگوار است و هم جزء وجور و احیان کوفه بوده از چیه البته. در دراخ ممنون زکار خلاسش اینه که یه مرزای دورن دراخ در میداد گیشون توی داری همزیسی نبونن تقسیمش رو هم نلایش موندی یه رویز بیجرمش رنگم همه تمام کردی گفتم در راحت شد این چیه من نراحت شمه کلای برگردونم فقال نی وقتی که حتی آقا که بشه این سمیه محمد بر از جلسه قاله روی عبدالله اینه ادارا جوز زباقی ها فا از فا اومده ها من از ارده یک از سه که اینو تقسیم بکنم و قال لا, لا برسه بذاره اما ان احضر معتی این همی که داره تقسیم میکنه که همه هم پول داره حالا پول مال تو بوده داری بیگه که تقسیم خب ایشون یک وقت در این گفت برگشت نقدرش پول گرد این کار ثباب داره به حیثی که انسان مثلا معتی اون مال حساب میشه محل شاردش هم واضحه که در ذهنیت اصحاب ما وقتی چیزی رو از امام نحب میکردن در مقابل او تسلیم بودن و او رو بجت میدنست حدیث شماله یه این حدیث رو من چند بار مضمونه نردو کردن سنده من عرض توی هم که نبی نیست اما مضمونش بد نیست محمد ابن یحیاب بعض اصحابنا هم من ذکرم و انها بی جمیله بی جمیله یه معروف ضعیل تذیر شده دا. شاید اینجا هم نبوده همانجوری داره ابی جمیل اهل بصری این چیز نمیشناسه اون ابی جمیل کوفیه فیه اشراسه تو بعضی از نصح هم آمده ابی جمیل حالا جمیل باشه جمیله باشه, جمیل باشه. نمیسته حالا چون تو به بغداد این مورد این نقطه خارجی است قبل استفاده است با یونس و عبدالرحمن زغدا بودید فزین انا امشی معه في از فتح صاحب فقاه فقاه اونی که آگرومی روح دفنشو او کردیم فعصاب خوب یونوس از این به یونوس ای به استضاق رسید فرعیزو قدر کم میده داره زالت شمس فقلت علا محمد قال لیس اریدو انو سلیه حتی ارجه البيت، فعد سلقا در خمر من قال تقول شبهه این من ليس هنا که او اون تری این رأی از که علی یونس به اتهام و رأی داشته وقال اخبرنی هشام ابن الحکم انه سال ابا عبدالله علیه السلام انا الفقاه قال لا تشرب و فزنه و خمر اون مجبوز فالا اساب که تو فالا محل شاهد اینه که یونوس به روایت گرده بیشان در هم ترده اعتماد و البته هست این چند تا روایت از اون 98 دو تا 100 دو صدایت هم همین طوره بله صدایت اگه اروایت که اولاینو حاشب درم بکنه که نبی هامر بزاز بود و هموازش رفت و محتاج شد و از کسی ده, ده هزار درهم طرف کار بود ایشونم نداشت کونهی ای داشت شروع و پول آورد با آقای ابن عوی عمر داد اون دره داد ابن بود دیگه بده کار بود ابن علی عمر بود که ابن عوی عمر بود که از کجا این بود مثلا ایسی بودی گفته نه کسی بخشی دردن ای سال میگه نه می خواست بودیم که اصطلاح خونه ای داشتم و رضا برای قضایده نماده بشون فبال نبی عمد از دل این یک تیکه حدیث این،, این که فده به مال این یک دنباله ای داره که از طرف نسوا اون رو احضارش کردن اما دو جور شده یکی این که باید که خاضی بشته یکی این که, که شیعی ها رو نشون شده چون آشنا بوده وزارشیه رضایشون محامد کرد 120 درده شملاق 120 درده چوبهی دارد به پاشت و سر دره هزار درهم هم ازش هم. پول گرفت هم. یک سال هم زنده هم از زنده که درامت این قسمت شد هیچی پول نداره در کمال احتیاط همه احوالش هم نقصه بود این آقا فید رایی ندارد خونش خلوط همان پیش درویشون بود در زاده هم فقال محمد رو نوی رو میر حدث نیر رویه محمد از اجیبه احسان بود این ارمی عبدالله آل لایی یخ رجل رجل من نسخه رأسی به ده که حضرت به خاطر فول و به خاطر قرض نباید خانه کسی فروخته بشه. <تصفح> <تصفح> به ده ارفع ها فلاح ها اجتبید بیایید کجا بگو خورده برگرده لالله ابن نمه تا جنفی وقتیه ولکه من این پولونه میگم به خاطر رواستی که امام صادقه هم این هم خب نصافانم رواست که و قدیلی رواست هست این هم دلالت میکنه که از خواب ما حتی در شدت هم که بودن اگر حدیثی ازشون بود قبول نیست در کتاب تحضیب عبو طالب الانباری ایشونه اسمه که عبیدالاد احمده بر این شوافق معیید شهر بوده نمیزه قضایه سیاسی را زیبیشان بوده تضعیف شده ایشان لکن بعد از شواره محیل احوالی شد قال حدث این احناکو محلی قال ما این و محران محران قال حدث این حبدالله بعد توش داره بعدی از مشاکل سنگی. قال ایراقی تر خسیم صادق به عبیر وسیل قلصه اشیاء از من روات الحدیث و منصمه امه که از پدر شما از امان واقع نهار کردن اونا نهار خب که به عنوان تقریب که امان قبول فرموید که تو روایتی که نهار کرده بود اینا دنبال هم دنبال همین است که دلالت میکنه برای اینکه که اصحاب امان موسیقی امال بزرگان از بزرگان عمل امال به روایت یه روایت طولانیه اگه بخاین بخونیمش با چربی داره این شهرش واسه من اینکه لور داره خیلی طولانیه من آخرش بله قصه ای در باب طلاق هست که در در شهری شهر داره شرق طولانی داره بعد قال ابن سماه آخر حدیث را کردم لحظه حسین و ذکرال حسین ابن حاشم ادر حسن محمد ابن سماه هست و آقای است با یک واسطه استاد کلینی قال ابن سماه و ذکر حسین ابن حاشم ایشون هم از ظاهر تو ذهن هم یا حسین ابن حشام یا هاشم ایشون از واقفی هاست هنهو سأل ابن بوکی و ها از ابن بوکی به این مسئله پرسی فعجاب همون به حال جواب. فقال لهو حسین و عاشقیم بهش گفت سمیت فیاضا شیع همین در مدرگی روایت دیگر این چیزه قال روایت رو باره فقال حسین و عاشقیم این رفاه روایت ازاده خده به این همون زوج یکی از مسائل فلا اگر ازدواج بکنه در وسط فقال ابن بکر زوج و غیر زوج اندیس سوا مهم که ایتا تو توی یه روایت زرار رفاید ولی آمده لیکن این قید رو خصوصیت رو الگاه میکنه فقل تو سمع تو که هادا شید چیزی تو در دانه شندی که زود باشه نباشه فقال الله نه روایتی نهیدم هادا ممار زقال الله من الرعی که تیاز این ممار زقال الله به ذهن ما مای طوری. قال ابن و لرسنه اخوزه به قول ابن بوکیل فه این نروایه ازادتان بینه همه زودان یه وقتی هم به این مناسب خودو ما هم یکی درست کردن که قدمای اصحاب حتی غیرشیع هم مبناشون این بود که به متن حدیث تمسحی میکردن از او خارج نیشدن ببینید میگه لیست نروایی که ابن بوسمائه فقیه باقفی هم هست شیعه نیست این میگه اصناعش نه خود به قول ابن وکی چون در روایت داره اضافه تا بین نماز و صبح میگه زهد لا نمیشه اینه ما ت از مورد روایت نمیگیم اضافه تا بین نماز و صبح البته این رو اصحاب ما حال ذکر کردن در طبقه هم که مثلا ابن وکیر قائل به یک نوع رأی بوده ظاهر این حدیث هم همینطوره ولی این حدیث احتیاج به شهر داره و اون شرح و حقا با ابن وکی رعی هم نیست حالا توضیحش بخواهم بزنه از هی طول میگشه بعض از آنگرش فرکرن یک توضیحی برای حدیث بدم که به نظرنم خیلی موقفر نبودم حال یک شرک یه داره احادیث دیگری یک صحبت دیگری این ظاهرن اشتباهی برای اون حسین ابن حاشم بعدا برای خود جناب آقای ابن سماه پیدا شده بله اون مثلی رو که ابن بکر گفته، مفاد از روایات نه اینکه حالا رأی باشه لکن ممکنه اون سلسله رواج دسته از روایاته اون دسته از روایات ما قبول نکنیم اون بحث دیگری نیست به هر حال مطلبی رو که ابن بوکی گفته مطلبی نیست که معتمد بر قیاس باشه این صحبت رو ادعا کرده که گاهی از وزو ما متهم به قیاس شده حالا اینجا واسه ایشون حالا هذا من ورازق الله من الرای این رأی را نیست را ای اصطلاحی ما نیست اینجایدی گند اشتباه شده. و هر حال من فعلا وارد این بحث نمیشم چون خیلی طولانی واژه که رو صحبت بکنیم و شواهدش رو چه مشکل داره واقعا هم در اینجوری واسه اصحابم مشکل داره یعنی واذ یک رو ترک بکنیم طلاق ظاهرا ما رو ترهش بکنیم. به هر حال وارد بحثی نمیشم چون بحثی که در باب طلاق جاش اینجا نیست این در بحث‌های خودش. اجمالا نشون میده که به ما نفقط عمل به روایات میکردن خیلی هم دقیق بودن که مثلا اون روایت باز اینطور باشه از که اون تایفه ای رو که ابن بوکه ای بشت. اون که زوری و زوری سوال راست میگه ابن بوکه مفادر روایت رعی نیست بله اون تایفه روی که اون قبول کردن اون تایفه رو ما قبول نداریم مثلا تایفه هست نه اینکه رأی و قیاس باشه علایه حال باز هم مرموم کلینی از میرانسای واقفیه امید ابن زیاد از فرمشون متوفای سی تقریبا ما بعد از این تاریخ کسی از بزرگان واقفیه در حد ایشان نفشناسیم شاید که کنم فضیه باشن ظاهرم عوائل قبلن چهاران واقفیه بیه آشواش متلاشی میشن شواهد این ابن سماعه که هم واقفیه قادر سال تو محمد ابن عبی حمزه این محمد ابن عبی حمزه به سر ابو حمزه سومالی محروف ها مطای طلب قائب این بحث معروفی بوده در طلاق قائب چون در بین اصحاب ما این رست بوده مسلم بوده که طلاق باید توی طور باشه اهل سنت این بحثی ندارن رو در حج از طلاق می‌ذارن مشی ندارن چون مطلاق باز در طهر باشه حالا اگر غایب هم باشه دیگه به نظر در, در طهر یعنی قال حدثنا اسحاق بن عمار اورا با بن عمار ابي عبد الله وابر حسن قال الى موالاهو شهر یعنی اگه یک ماه گذشته دیگه مثلا این یک ماه گذشته دیگه حسنه که در حج بود دیگه در حالت شهیت این خلاصه این رو خیلی عمل نکرد عمل توضیح تو بحثای فکر حدیث شماره پنج حسین ابن محمد از معلد محمد عنل حسن ابن علی بل. این حسن ابن علی به احتمال بسیار قبی باز همون جناب آقای ابن فضال باشه احتمال کسی دیگه هم هست احتمال این که باشه چون این در یه طبقه هستن و معلده از حسن علاوه نقل ما علا بیشتر از وشعه این یک سندر و حمید ابن زیادن ابن سماه ابن سماه هست کنم حسن ابن محمد ابن سماه هن جعبر ابن سماه حالا این کیه این همه که می شبه بد نیست این همه نمی شه را بودش هن عثمان یا عوان ابن عثمان هن زراره انا عبد قال ذا تجوز وکالا چطور طلاق طلاق فلذ حسن قال به وبهذا الحديث ناخذ این اصل در اینجا ترجیحه یعنی ما این حدیث رو در بقیه احادیث ترجیح میدیم حدیث, حدیث. حدیث شماره 36 محمد بن یعوب حمید بن زیاد باز هم از راوی ها از ابن سمعان ابن رباط حسن رغاد ای ابن علی رباط بعدش ابن عيسى بن قاسم فقنا عبد عبدالله علیه السلام ان راجون سعی میکنه امراتو این استعلام درباره تلاطمش تأخیر میکنه تأخیر میکنه مرد زن میگه سعی میکنم بیشتر رو کنم حالا که تلاطم دم های دن زن میگه نه من میمونه یا زن میخوادم تلاطم این استعلام تأخیر میکنه تأخیر میکنه انتخاب امر را به دو بکنه که دلش میخواد کیو داده یا باشه با هر یک اونو در قرار آن آمده که پیامبر بزن حاشیه شما درتون میخواد دا آخرت میگهین یا با من بمونید این بحث بر در ف اسلامی هم سنیام دان همشیه ها پیش ما معروفنی که جایز نیست. آیا مبارکن گفتند و تخیر بی معنا نمیکن چون بحث فکری این شد جای خودش. قال علی حسن هم به به حاضر حدیث نه و خیار خیار تخ اختیار رو خوشذاره که قبول کنیم اوات وقتی. بعض حدیث دیگر حفهده به زیاد بعض از واقفی ها، من ابن سماه هست که من چند با هم همید هم ابن سماه هر دو از بزرگان حدیث هستند و در اینه هر دو فخی هم هستند و هر دو هم هستند و ظاهر نگل هم هستند برای خواهدش بد و از خصائص حمید ابن زیاد نبقی از ها خیلی هم نخش بزرگیشون در فحارس داره چنان از که ما سنیا ندارن اصحاب ما به خاطر برکت شیخ و قبل شیخ و مرمونه ما اصولا دو مهور اساسی داریم خوب اینه دقت او یه مهور روایات ما یه مهور اکیازات و کتب اصحاب ما کتب اصحاب. در محور روایات ما اصطلاح شمیشیم روایات و اون محور هستیم شمیشیم یا اجازات و نصدات ریدان اون خصوم انوشه خواهی نخواهی؟ مثلا ما یک کسی داریم که در اجازات خیلی نفس داره اما تو روایت نش نداره من هم نگشیم با داریم که در فست مثلا روایات خیلی نفس داره و تو اجازات خیلی نفس نصف <تصفح> نداره من هم مثلا که در روایت ن... بس کافی کلینه اینطوریه تو اجازات خیلی اسمیشان نیست خیلی چند پنجیش مورد اما خب کتاب کافی یک از خود و اساسی و یه شخصیت داریم که در هر دو نخش دارن هم تو روایات و هم تو اجازات سه شیخ توسی هم کتاب روایی داره هم فهرست داره در غیر امامیه این همه خیلی نخش داره این همه در زیاد قده زیادی از کتب اصحاب ما چه در پیش نجاشی ایشتر بشه از این فهرست همه داره هم در کتاب کافیس از کردم، ما تقریبا معروف این چهره ای که در واقفیه ازش حدیث داریم که چهره ی و بزرگوارش همین حمید بن و بیشترین حدیثش هم کلهییه که شاهد شده در کوفه رفت کربلا است مولانا فی شیشن شون حمید در خواب میبینه که واسه کربلا فوت کنه از کوفه میره کربلا در حائر بصری رو خودو فوت میکنه همین می شیشن و آثار واقفی ها رو نقل توائد خاص خودش داره انصافه اصلا شیخ توصی مقدار زیادش رو او داشته صدا خیلی بیچم تو که از همیده او داشته به کلی نسبت بینهای تو همیده زیادن ابن سماعه که اشنا واقفیست و فقیهه. البته ابن سماعه نقشی در کتب اجازات نداره تو اجازات اسمیشانی هست همیده هست اسمیشان علی علیهن حسن تاتوری که اشنا از هموناست، و مرد حضور باریست قال قال الحسن لیست تلاق الا کمارا بکیر ابن احیان امن یهول لها این در اینجا باز تاتوری قول بکیر رو گرفته از کلن این دو تا محناست در اونجا میگفت که ابن سمایه گفته قول بکیر رو قبول نداریم اینم حدیث شماله 107-108 باز یک حدیثی نه هم می جمیل بن در قال لا بر راجل الا الا نفقت الابرین ول ولد، الا بر نفقه ای اوبرین بله قال ابن عبی آفیر قلطل لجمیل به جمیل گفتم ول مرهر شو رو مرهر نگفتی والدین و بچه رو گفتی زن رو نگفتی قال قدر رویر انبسن عبی عبدالله قال ادا کسا ها ما یوار عورت ها و یوت امه ها مایوگیم و سلمه ها پوشا که بده, بده قامت مرگو و الا تلقه ها حالا این هم یک شرح بحث فقی داره که فلان جاش اینجاست. از جمله روایات حدیث باز شماری صد و نو قیدت من اصحاب نوان احمد ابن عبدالله احمد ابن عبدالله هم برقیه که اصطرامش برقی پسر هن بعض اصحابی هنان ابن صدیر زبط کلمه این طوره حالا کن تو من عبی عبدالله علیه السلام علال معایده فمن تو علال هندبا همین کاشین پس همین کاشین جزوه؟ الان در دنیای ما متعاره جزوه کراکی هاییست ترف هم از ذکنی جزوه صدوی های گیا گیا های دارویه فقالد یا لملا تعکل کراست و که کره به اطلاق در اون زمان قدیم در فارسی زبان برای دیانه کره نمیگفتنگندانا گنزانا نمیترس البته ما جوان کم به روی فلهنجوا چون در وازاره که هر روزی اول سه رو 70 قطره آب بهشت به روی این کاس ریخته شد خیلی سدی واقعا آثار عجیبی داره مثلا برای کبد و این حال را خیلی آثار خوبی داره اما حالا بیستر قضا بود جزوی خوراکی نیزن فقاله من در نیجا هنگ قلتنه من قیله هم کن در بابه هنده ها با. در بابه هنده ها با از رسول الله هم نعقش من وارد بحثایی تاریخی شداریم سرده شدارم ارز که به این کالا چیه مراد از این که اون رو ایخته میشه اون یک بحثیه روایت شماره 110 یه روایتیه که باز در مسادر واقفیه بوده و اجمالا بد نیست خوب سندش علایه حالا حالا اون اخیری شعالا ممکن نشتن اون بد نیستنش آبرای اعتماد قال او سایله یه رجلو و ترک خمسمه اد درهم و ستمه اد درهم و ترک لهو ابنتم و قال لی اصابتون به شامه یه فامیلی هم در شام داره. من اوشه قصدر کوفه بود یه قصر عبدالله ابن محرز یا عبدالله ابن محمد محرز درست بیا قلانست کلاه خروش کدار قلانست یعنی قلانستوه نیکلاه فسرزان ابا عبدالله علی السلام کی چکار بکنه از درمون نصفیش بده به دختری نصفیش هم بده به پامیلش در شام. این فتای اهل سنت معروفه یه بحث اولو تأثیر معروفه شیعه معطلال همه رو باید به دختر داد سونیا معطلال نصفی به دختر, نسبت دختر نسبت طبقی اول دختر بعد طبقی در فقال احفل ابنته النس ولی عصابته النس ولی آخر از اجازم واضح کن بله فلا ما قدمت اینطور کوفه من آمدن کوفه اخبرت و اصخابنا رو قوله اصخابم به اصخاب کردن این دو فرمون بله فقال و اتقاط حضر تری تو تقریب کار بکنه و من اصخاب رو سن نهارم من رو سن نهارم ما میفهمیم این محضب که شما مشهوره تمام باز به دختر داده به فامیل چیزی حق ندارن فعرفه ای کل ابنه هن نصف راه هم به فتوای اصحابه عجیله رو گرد امامش این دو بود اصحاب گفتن تقییه کرده به فتوای اصحابه صبح حجج شد سادگره هم هست فلقیل تو ابا عبدالله علیه السلام چه تو بود به ما قال و اخبر تو بود همینی دفع تو هم نسبه آخره علال ابنه فقال احسن کارو خوبی کردی این نما هفته ای تو که مخافت اله احسابتر چون گفتو فامیل در شام دارم از احتماله که این فامیل شام از اون طرف بیان بعد برش مشکل درست بکنم احتمالا حضرت مخافت اله احسابتر به خاطر اون فامیل هایی که ایشون گفت در شام حضرت احتمالا این جهت تاکید خب این خیلی لطیفه این حدیث و ذهابیس بسیار لطیفی است که عملا نشون میده که اغلبه الصالحون الله مجمعی چطور و اجل مراعات طهیره رو تا این مقدار میکنن با اصحاب ما خیلی عجیبه میفرمیزند که حضرت داره طهیره میکنه یا طهیره نمیکن حدیث شماره 11 احمد بن محمد بن ایثار علی بن حبیب علی بن حبیب تضعیف شده البته احتمال میده به خاطر یک مرداری با یونوس بد بوده یک روایی فیونوس یک مرداری به خاطر این قول ما قضایه سیاسی دعوای هیدرین احمدیم بیشاره تحضیحش کرده قال سعن تو عرض از علیه السلام و و از اختلفو فلحرمه به پیل همین از زمان ما مصاده الان هم هر زمان ما دیگر که آیا در مکلوم مدینه تمام بخونه یا مختاره قصد بخونه یا مختاره ف بعض هم یوته و بعض هم یا ق بله رحنم من یوتن از آره روایت این قدر رواها بعض و اصحابنا نیفه تمام و ذکر فعبدالله این جندوم از نرو کان یوتن از داره که کان ابن عبی عمر رو بازی اینون و فلان کان یو غسرون نایتقاد به تخصیر داشت و قاللی رحمه الله ابن جندر من الان بقیه روای تو زهنم نیست و هر حال این بحث بحث معروفیست شد مجموعا که این مسئله یه. قصد و اتمام در حرمه و در مواسن عربه به نظر هم 25 تا سفی تا حدیث مجموعا در وجود داد خود من عقیده اینه که همون قصد بخونه و تمام وچه روشنی نه داره تقییزاً ساله خودش. علی ابن ابراهیم، من عبی و محمد ابن یحیان احمد ابن محمد دوتا سنده هر دوتا سند کرده به ابن عبی نجام عبد الرحمن ابن عبی نجران. اما محمد ابن عبیده الحمدانی که نوشته است، قال, قال رضا علیه السلام ما از خوابو کفر رضا قال قلتو کانو یقولون اللبنون للفعل حتی جاعتمون روای فعل من الرضا ما یوحرمون من النصر البته ماها متعارف اون یحرم هم می اشکال من دارم اما چایت گرارت به الرضا ما یحرم لیکن بهترش حرام من رضا ما حرام من النصر سرج و اضافه این بحث معروفیست که اختلاف سنی و شیعه در واقعه رضاه دیگه اختلافی از قدیم در جهات مختلف بشه آقا این سوال اولیش خیلی از این روایتیه که گفته احتمالاً توضیحی در سطح مهروات باشه روایت شماره 113 اخبر عن شیخ مراد شیخ مفیده این از شیخ توسی در تحذیبه شیخ توسی وقتی میگه شیخ مرادش مفیده فن عبدالقاسم جعفر بن محمد مراد ابن حولوه ای صاحب کامل زیاد فن محمد ابن یعبوب ان علی بن ابراهیم از کردن یکی از طرقی که شیخ توسی کتاب کافی رو نرمه میکنه اینه شیخ توسی از مرحوم شیخ مفید از ابن حولوه از کل ابن. تصاداتان ابن و کلینی ترده مثل همه هر دو اصیفون اومیه بعد ساکت برداد شدن البته ابن قولوی شاگرد کلینیه و تقریبا حدود مثلا یک چهل سالی بعد از مرموم کلینی چون به نظر ابن قولوی 367 یا 68 کلینی 32 به اصطلاح 8 یا 9 اما علی ابن ابراهیم العبی رفعهو موصول رو بعد نبوده تا ارسالش این یک پسیز که در سالت امر ابو عبد الله که اینی کنتو فی نفسی اشونی بودم، که بعد به من فسوا زمان دیگر هم به هیچ داریم. حالا شاید که گفت چون گفتند که اسم بنت اومیز. چون اسمان بنت اومد که زنه، ابو برد شد این بچه شما محمد محمدان روی که وقتی به دنیا آورد تو سفر بود بلیدان یعنی بعد به, دون... به سفر رفت تو سفر هچ هیجده روز که به اصطلاح زمان رسول الله همه است هیجده روز که از, از ولادتش گذشته بود از داسته رو در مکه پرستی در هیجده بدا سال ده همه که چند روزه با هیجده روز آخرین دلیل اصلا کوسب بکنم استاد یارا طاهر باشه این رو مستند برادن برای که اول اکثر نفاس 18 روزه امام سلام الله علیه میفرماید که نه این درست نیست این استدلال درست نیست دقت بکنید یعنی که از جهاتی که مونده ائمه علیهم السلام حتی روایتی که از رسولان نقل شده توضیح میده مثلا فرام درسته از روز اولیشو مستند تمام شده فقط این 18ام کرسی اگر من دماغ کرد، فرصت ها می بین شده. دقت کنید. سوال رسول الله الله علیه و و روز. ولو قبل این دیر سوال کرد. اون استدلالی که سنی‌ها کردن که اکثر نه تا روز از این حدیث این درست نیست. حروس غیر از این هم ما داریم به این نداره. باز مرهوم کلیمی این تا اینجا چند تا روح شد این از شماره به اصطلاح و چرا روح غیر اصطلاح هم از شماره نهد و در اینجا آمد تا شماره سد من چند نفر ارز کردم بی که از امتیازات چیازات احادیث مثلا این جزای اولش به زمان خدای بروجه دیه این دو بار بروجه دیه این جوی بود که در باقه باهه احادیث رو دستبندی بکنیم مثلا یه احادیث میگه اقلحه یک روزه اینا رو پسترن یه احادیث میگه اقلحه یک روزه اینا رو پسترن اینطوری نه اینکه عرقاتی بکنیم دستبندی خلاه ها روایاتی بود که اصحاب علمه مراجعه کردن به روایاتی که نقل میکردن یاد حتی در مقابل علمه ذکر کردن امام گید چه این کانو بگید آه روایات کردن شما اینطور. این تو باید محلی چیزی اینها به معنای حجیل خبر انصافن راست مطلب درست قبول مطلب رو باید قبول بکنید اجمالا این مطلب که در دنیای اسلام رو روایات با عنوان نحل سنن رسول الله اعتماد کرده سنی شیعی زیدی میدیان نمیشه این کار قابل این این مطلب قابل این اما این کاری هم یه خصوصیتی داشته باشه و بگیریم اون رو ما الان نداره دو تا حدیث دیگر هم هست که پیشو نه بیکن دنه هیچ از اصول کافیه یکیش هم از و درجاته اصول کافی رو ها تشالا ساده اشکال داره دارد بر ما جو دروات عبدالعظیم حسنی سلام قال عن مفصل منه قال قال ابو عبدالله عليه علیه السلام من الله به غیر سمائن من صادره الزمهم الله البتته الى الاناء حالا اینجا الزمهم الله البتت توی بعضی از مصطلح یعنی یعنی میشه البتاء یعنی گمراهی یا تيه یعنی گمراهی تائه میشه گمراه میشه و من الده آسما هست آره اینجا شکمی الالعنا مثلا این نسخه ای که کلیدر الالعنا توی روازه که داره الزمه الله ته الى یوم القیامه به جه جهه الالعنا دقیق میکنیم کلمه الى یوم القیامه آمده البته اون روازه مفضل نیست مجموعه موتون رو داریم بررسی میکنیم و من الده آسما هست من غیب الباب لدی فتح الله فاوه مشکن وزالک باب المعمون علی سر الله المکنون این بله این هست این زیرش و من مندعا سماعا در اون متن دومی نیامده پس این دو تا ربایته یکی از کتاب کافی کنان خوندیم بعدم ایشون از وسایل نرکنه از مرموز سفار در وساجل و درجات عادتا وقتی مثل این آقا نقل کنه از وسائل از وسائل درجه حتیان تو وسائل درجه پیدا نکرده شاید تو نسخه وسائل بوده شاید مثلا آداتا خود ایشونتون از وسائل درجه نقل کنه برحال در کتاب در این چاپی که ما داریم از وسائل درجه چاپش ها چاپه آینو در اون زمانی دوال چیز رو شده پیدا نکنه صفحه 13 اینجا نقل نکرده بله صفحه 13 ان یعبوب ابن این بسیار بزرگواره ان حسن ابن اممار توی کتاب یعبوب توی کتاب مساعد چاپ فعلی اصحاق ابن عمار. این حسن و اصحاق اشتباهش هم اینه که اصحاق رو اصحاق می دوشتن علف متوسط نی می این کلمه اصحاق ببینیم با علف ممکنه حسن خونده بشت ممکنه اصحاق خونده بشت <تصف> درست نباشه توی وسائل حسن ابن اممار آمده توی نصحه مطبوع اصحاق ابن اممار آمده اصحاق ابن اممار معروف نباید باشه طبقش اینجا نگو برای تو اون سه برسه اینجا نگو برای انا احمد ابن نر و انا امر ابن شمر که از قدیم همجان و شرکت تضییم شده جابر جوفی انا عبی جعفر علیه السلام من دان الله به غیر سمای من صادره، الزمه الله تی گمراهی الا يوم همچراش عزمه از البته علل یعنی قطعا بسونه من قطعا خداوند او رو به سختی میندازه <تصفح> من ننوشتم من حواسم نبود این مشکل که من یک بساط سازه چاپ شده سه جلدی. دو جلدی <سوف> یکی من سیزده نویشتم پس معلوم میشه من ترجیه به کلمه تیهش نکنم. حالا یا حالا این ای که اینجا نویشتن این که حالا نبوده به هر حال اینم ترجیه فرمونیم بسیار خوب از الله البته نمیده اگر البته باشه لحنا بهتره تیه هی هی آموز کنم که و این ذی رو نداره و من دعاء سماع من غیر بابل لدی فته الله و مشک و ذالک باب المامون الا سر الله ال کمی عباراتش همچین روشن نیست به هر حال اگر عوین مایل باشند در عیون اخبار رضا همین نسخه موجود اینو اضافه کنید در جلد دو صفحه 9 حدثنا ابو الاسر عبدالسلام عبدالشید انصاری رضی الله به سمرقند. از کلم مرحوم شیخ صدوق اگر برکی کسی رضی الله عنه گفت معناش وثاقت نیست که بعضی‌ها فرمیدن. معناش حتّی اکثرش اینه که شیعه بودشون این دنیا رو کرده. این آقا رو ما نمی‌شناسیم. چون گفت رضی الله عنه به سمرقند، باید قاعده بله. مثلا شیعه نمیده که اونجا بودن ما الان از اینا آگاهی نداریم. قال عبی قال احمد بن اسحاق موسع، قال امی،, امی این اگر باشه قال امی حسن بن اسحاق حسن بن باشه احتمالا ب... به اصطلاح نوه موسى جعفر که یکی از اولاد موسی جعفر اسحاق بن موسی بن جعفر ما میشه که در محله ما هست مثلا اون به اسحاق ردون میشه عمی علی حسن ابن اسحاق قال سمعت عن عمي علی ابن موسی با شواهد میخوره که مراد از اسحاق اسحاق پسر موسی بن جعفر قال سمعت عن عمي علی ابن موسی ز علی اسام یقول حدثني عن عبی ان جاءه علی امیر المؤمنین اونجا روایت انفرزه قال ابو عبدالله حضورش قال ابو عبدالله بود یکیش پیش عبی جعفل بود اینجا روایت رو به رسول الله نسبت داده مندان به غیر سماه الزمگ الله و البته الال انا الال فنا به نظر نیست؟ فناه الال فناه. و مندان به سماه من غیر بابلدی فتح الله عزوجل خلقه این زیده همون اون فتح لخرقه تو ندار فهوه مشرکو و الباب المعمون علی الله تبارک و تعالی محمد صلی الله علیه و آله این درسته اون متن رو که از کافی خونگی ابحانش این درسته روشن شد اون متنی که ایشون در اینجا از کافی ارده متن کافی اینجور و داره که الباب المعمون علی سب الله المکنون خیلی همچین واضح نیستم که روشن نیست اینجا این خیلی مهنه شنگیه و الباب المعمون علا الله یعنی شما باید تمام امور دینی رو از همین باب بکیرین که رسول الله باشه و الباب المعمون علا وحی الله تبارکتالا محمد صلی اللہ علیه این المکنون ظاهرا مکنون همین تحریف شده به این کلمه این هم رجع راجع به این روایت که اینجا آوردیم و دو تا روایته البته من دان الله به غیر تمام من صادره معلوم نیست حدیث مراد باشه این انصافا دلیل تو باب حجر خلق آورده مراد این که شما احکام بتونه باید از اهل بیت بیگ از رسول الله مراد اینه نه اینکه حتی دقت می‌سن بحث خبر نیست بحث حکم بحث دانه دین دین شما باید از رسول الله گرفته بشه به نظر من این دو حدیث رتی به بابا حجد خلال بردم در رجال کشی محمد ابن مسعود استاد ایشان قال حدیث علی ابن محمد ابن فیروزان قومی که ایشان رو نمی شنستیم قال حدیث علیه احمد ابن محمد برقی برقی پسر به اسلام مرحوم کولمی هم این رو از برقی عبرده انعبی هم ان منذکرم و انزید شهان اگر سرت به داره علی جعفر علیه السلام تقریبا معروفی از قول الله تعالی خیلی مشهور شده فلی امر انسان الى تام قال قلت ما تام و قال علمه الذي ياخذه و اما يعتذر چه مراد علم حدیث قشنگی معنونش قشنگه که تعبیر کرد تام رو به علم این هم رفتی به باب حجر خبر این دو تا حدیث تا حدیث اخیر ربطی بر جده خبر نه بله. بعد ایشون فهمونم بیردی تیه کسی این در اصحاب تضاد و درزی از روایات سمیت من اصحاب که در حدیث کلون سقف و موصل هم حلیک حتی تر القائم و ترات دو این در روایات بابه چیز و خوب بود بعضیش رو بیشتر ذکر میکرد از تا آرز اشاره کرد چون بوده و ادهی از روایاتی که شروع فهمدن به درد میخوره بعد نیز اجمالاً قاعده از توش در نمیاد و غیره من مایون که نعنی استفاد من حجیت و قول استقه دون غیرها و فل احادیث الوارده فی عدد زمان استقه اندو خلف مال غیر فی من غیر تفرید مایون ای رضالک و کلا موارد که قبول شهات العادم اینشون اینجا را که این مختصر آورده اینا ها اگه بیاریم شای چار پنج صفحه اینا حدیث داریم ایشون بوده. یه مقداری ما از حدیث داریم کم هم نیستن خیلی هم مستفرقه در فرم مثلا کسی آمد گفت که مثلا به یک زنی که شوارست مثلا فوت کرد. میگه اگه سقه باشه بسن این کار رو یکی همین در لرباب زمان آیا زامن یا نه اگر سقه باشه نه لفظ سقه من سابانم ارز کردم در نسبت مقدار زیادی از روایات ما وارد شده در موارد مختلف که تقریبا تمام اینا موضوعات خارجی هست ایشون اشاره گردن اینجا زیاده یعنی اگر کسی حال داشته باشه استخراج بکنه با این کامپیوتر در مجموعه کتب روایات ما روایاتی که تعبیر به سقه شده مناسب وکالت مناسب تلاق مناسب خیلی مناسب مختلف انصافا این روایات زیاده اما اثبات وجود خبر سه بابونه هم در موضوع ذاتیام معلوم بنرسافت خبر سه حجه مثل علامه دلعله علیه الدلیل خیلی مشکله این مجموعه روایات ان شاء الله تعالی اگر فرض توفیقی بود به اذن الله روایات معارضشون چیزی نمی‌گوده صداده این روایات یه تحلیلی از روایات معارض که من اون شی رو را ذکر و نتیجه گیری نهایی ان شاء الله